به نام خداوند گردند چرخ بلند به نام او آغاز می کنم که یار و پشتیبان همه دوستاران نیکی و نیکو است. خداوندی که مرا نیز از مهر خود فراوند برخوردار کرد که اگر نکرده بود در چنین روز و روزگاری این کارس ترک از من کوچک هرگز ساخته نبود و گامهای لرزان من این راه دشوار را نمیتوانست بپیماید و شما که در پیمودن این راه با من بودید و هستید بدانید اگر در زمینه فرهنگ و عدب ایران خدمتی انجام گرفته است شما نیز بدون شک در آن سهیم هستید هموطن شما سعید قائم نقامی در روزگار پادشاهی کیکاوز دو دومین پادشاه کیانی ایران هستیم در روایت های پیشین برای تان گفتم رهاورد لشگرتشی آزمندانی او به خاماوران زنی بود به نام سودابه دختر شاه خاماوران که با خود به ایرانش آورد و شهبانوی ایران ساخت زنی اهریمنی با خوزهای گناهالود که به سیاوش ناپسریش شاهزادی دلیر و راست وفادار مهر و عشقی احریمنی پیدا کرد. سیاوش که همه وجودش از راستی و درستی ساخته و پرداخته شده و پرورده بزرگ دلاور ایران رستم بود به عشق گناه زن پدر خود پاسخ رد میدهد و به خشم این بران می شود که زندگی او را از هم پاشیده مهر او را از دل پدر بیرون کند پس گریان و نالان در حالی که خود لباس خود را دریده بود و صورت خود را خراشیده به کیکاووس زود باور میگوید پسر تو به من که نامادر هستم چشم بد داشته است و به خشونت خواست از که من کام بستاند و بر اثر او من جنین دو فرزند که در شکم داشتم از دست دادم اما که کاووس او را باور نکرده از اخترشناسان خواست که به او بگویند کدام یک حقیقت را میگه همسرش سوداوه و یا پسرش سیاوش اخترشناسان پس از هفتهی به که کاووس میگویند سیاوش بیگناه هست و سوداوه تریب کاری میکند و جنین ها از آن زن دیگری هستند اما سودابه به کیکاووس می گوید اخترشناسان از ترس سیاوش در پی جانبداری از او بر آمدن کیکاووس بار دیگر بدگمان شده چاری کار را از رحمان میخواهد خواهد به او رسم دیرینه از آتش گذشتن را یادآوری آوری می کنن. که آتشی بر و از آنها بخواه که از نیان آتش بگذند آن که راست گفته باشد آتش بر او کارگر نخواهد شد. که کاووس چنین کرد دو کوه از آتش برپا کرد سیاوش با اسب از میان آتش گذشت و آتش کمترین زیانی به او و اسبش نرساند. بار دیگر که کاووس به راستگویی سیاوش و بدن انگیزی سودا به پی برد پس دست او داد تا سودااب را به دار مکافات یا اما سیاوش که میدانست پدر در نهان خواستار مجازات سودابه نیست از او میخواهد که سودابه را بر او ببخشد و کیکاووس چنین می کند زمان میگذرد سوداوه در آتش انتقام است سیاوش میسوزد. پس شب و روز از سیاوش نزد کیکاووس بد می گوید آن که بار دیگر کیکاووس به پسر راستگو و شجاع و وفادار خود بدگمان میشود، اما این بار با هیچکس سخنی نمیگوید و خشم خود را پنهان میدارد. عاری عشق کیکاووس به سودابه به چشم خرد او را لوخته بود. در چنین شرایطی به پادشاه ایران خبر میدهند. که یک صد هزار سپاهی افراسی بار دیگر از جیخون گذشتند تیکاووس با شنیده این خبر بران می شود که خود به جنگ افراسی ها بدن. اما بزرگان ایران به او یادآوری میکنند، هر بار او برای جنگ پایتخت پادشاهی ایران را ترک کرده است دشمنان ایران از دیگر سو خاک ایران را مورد تاخت و تاز قرار دادن با این همه که سخت پافشاری می کند که خود به جنگ رود. تا آنکه سیاوش دلیر به او آگاهی می دهد که آمادی جنگ با افراسیاب است. سیاوش دلیر با خود اندیشیده است چنانچه به این جنگ رود از فریب و آزار سودابه و سرزنش های پدر رهایی خواهد یافت از سوی دیگر فرماندهی این نبرد خود راهی به سوی نامآوری است از کمر بسته به نزد پدر می تا از او اجازه فرماندهی سپاهیان ایران را در این جنگ بگیرد سیاوش از آن دل رنشه کرد روان را از اندیشه چون بیشه کرد به دل گفت من سازم این را به چربی بگویم بخواهم ز شا مگر کمرهایی دهد دادگر ز سوداوه و گفته پدر و دیگر کسی این کار نام آورم چون این لشگری را دا به دام آورم بشد با کمر پیش کاووس شاه به دو گفت من دارم این پایگاه که با شاه توران به جویم نبرد سر سربران اندر آرم بگم فردوسی بزرگ قمگنانه میگوید روزگار چنین میخواست که سیاوش مهوان دور از ایران در توران زنیم جان سفارت او میگوید کجا با اراده و اندیشه ناتوان خود میتوانین بد روزگار را از خود بگردانیم چنین بود رای جهان آفرین که او جن سفارت به توران زمین رای و بندیشه ناب کار کجا بازگردد بعد روزگاه فکابوس با شادمانی از پیشنهاد پسرش سیاوش استقبال می کند شاید با خود می است اگر کشته هم شود بشود پس بو می گوید قلید گنج های من در اختیار توست چنین بیندیش که سپاهیان کسان و نزدیکان تو هستند. ایرانیان این کردار و رفتار تو را ستایش خواهند کرد به دانکار هم داستان شد پدر که بندت سیاوش بران کین کمر را. از او شادمان گشت و بنواختش به نوی یکی پایه ساختش بدو گفت گنج گوهر پیش توست تو گویی سر به سرخیش توست سگفتار و کردار از آفرین که خانند بر تو از ایران زمین آنگاه که کاووز دستور میدهد رستم به نزد او رود فراوان رستم را ستایش میکنند و به او میگوید تو پرورنده سیاوش هستی بدان که سیاوش خیال دارد به جنگ افراسیاب برود اگر تو هم راهو شوی من از اندیش فارق خواهم شد چه هنگامی که تو بیداری من خواب آسوده دارم و چون نباشی و در خواب باشی من در استراب و چتاب هستم همتن رستم دلیر به پادشاه ایران میگوید سیاوش روح و روان من است بدان که من تو را انجام خواهم داد و با او خواهم رفت و کیکاوز از رستم دلیل سپاسگزاری گذاری می به پیل تن را بر خیش خواه بسی داستان های میکو براند به گفت همزور تو پیلیست هماننده رای تو نیر نیست بگیتی خردمند و خوابش تویی که پروردگار سیابش بود چو آهند ببندد بکن در گار؟ گوشاده شود چون تو بستی که سیاوش یامد بیامد کمر برمیان. سخن گفت با من چو شیر جیان بخواهد همی جنگ افراسیا تا با اون برو روی او ها چو بیدار باشی تو خواب آیدم چو ارمیده باشی شتا بایدم جهان ای من از تیز شمشیر توست سر ماه برچرخ در زیب توست تمتن به دو گفت من بندم، سخن هر چگویی سراغمدم سیاوش پناه خرلوان من است سر تاج او آسمان من و بشنید از او آفرین کرد و گفت با جان پاکت خرد ما جفت بر آمد خروشیدن نایو کوز سپه بر سرف توس به درگاه بر انجمن شد سپاه در گنج و دینار بکشا شمشیر و گرز و کلاه و کمر هم از خود و در و سنان و سپر به گنجی که بود جامعه نابری فرستاد نصد سیاوش کلی که خان و برخواست کت خدای توی ساز کن تا چه آیا اونا. گزین کرد از آن نامداران سوار دلیران جنگی ده و دو هزار هم تحلب و پارس توج و بلوج ز گیلان جنگی و دشت سروک سر سپرور بیاده ده و دو هزار گذین کرد شاف از دره کافزار سگردان جنگی و ناماوران چو بهرام و چون زنگی شاوران همان پنج موبت از ایرانیان برافرافتند اختر دختر کافیان به تا جمله بیرون شدند سپه رفت سوی دشت و حامون شدن تو گفتی که اندر زمین جای نیست که بر خاک او نه را پاییست سرن در سپه رختر کافیان و ماه درخشنده اندر میان آری. سپاهیان ایران بیرون از پارس در دشت آماده حرکت هستند پادشاه ایران که کابوس با شکوه هرچه تمامتر خود به دشت نیاید و با سپاهیان و دلاوران و پهلوانان ایران سخن میگوید آنگاه دستور حرکت داده خود نیز پیشاپیشان پیش آنها به راه میفتد تا چند منزلی آنها را بدرده کرده باشد زپخ لفت برون رفت کابوس شا یکی تیز برگشت گرد سپاه، یکی آفرین کرد پرمای کی ای نام فرخنده فرخوند پی مواد آجز از بخت همراه شد شده تیر نیدار بدخواه تان به رو تندرستی شدن به پیروز یه شاد باز آمدن و از آنجا یه کوس بر پیل به گردان بفرمود خود بر شد پادشاه ایران که کابوز یک روز راه را در کنار پسر دلیرش سیاوش بر رستم پهلوان و سپاهیان ایران اسب می و آنها را بدرقه می کند. هنگام بدرود پرا رسیده است پادشاه پسر دلیر و وفادارش را در آغوش میگیرد. هر دو سخت می دل‌هایشان دلهایشان گواهی میدهد که این آخرین بیدار آن روست به دوسیه بزرگ می گوید چنین است کردار ده روزگار، گاهی نوش از آن بحری توست و گاه زر دو دیگه پر از آب کاووز شاه همی بود یک روز با او براد انجام مرگ دیگر را کنار گرفتند هر دو چوبر بهار بخار زدیده همی خون فرو ریختند به زاری خروشی برانگیختند گوایی همی داد دل برشدن که دیدار از آن پس نخواهد بودند چنین است کردار گردند دخت نوش یا بی از او گا سیاوش دلیر و سپاهیان ایران به همراه رستم از پارس به سوی زابلستان حرکت می کند. سیاوش و رستم یک ماه نزد زال خردمند در زابل به سر برده به شکار و بزم و بادگساری می گذراند و پس از یک ماه زال دستان را بدرود کرده همراه با سپاهیان فرابان دیگری از بخشهای شرقی پادشاهی ایران به سود باغ در مرز ایران و توران حرکت می کند چون یک ماه بگذشت لشگر می را گوه پی تن رفت و دستان بمان زه زاول هم از کاول و هندوان سپاهی برفتن با پهلوان. زه هر سو که بدنام و لشکری بخاند و بیامد به شهر حری زیشان فراوان پیاده ببود بره زنگه شاوران را سپود. تالقان آمد و مرد رو سه وحرش همی داد درو دروب آن پس بیامد به نزدیک برخ نیازد کسا گفتار تر آری رستم و سیاهش به نزدیک در مرز توران میرسد شهری که تورانیان آن را اشغال کرد سپاهیان توران به فرماندهی گهسی و از برادر افراسی و به همراهی بارمان و سپه سرداران تورانی اینک در برخ هستند خبر رسیدن سپاهیان ایران به فرماندهی شاهزادهی جوان و همراهی رستم دلیر به برخود تورانیان میرسند پس گرسی وز به سرعت رستادهی به نزد برادرش افراسیاب راهی میکند که خود را به شتاب به ما برسان که شاهزادهی جوانی و همراه رستم و سپاهیان ایران به مرز ایران و توران به برخ رسیدن گرسی سوگرسی و بارمان کشیدن لشکر چو باد دمان سپهرم بود و بارمان پیش رو خبر شد به نیشان ز سالار نو که آمد سپاهی و شاخی جوان از ایران گوه پیلتن پهلوان یونی به نزدیک افراسی ها بر سام کشتی برا آمد از ایران سپاهی گران سپه پت سیاوش رو با اون سران سپه کشت یا به پیر به یک دست خنجر به نیگر کفن طولش کرد بیارای و چندان مطای که از باق به جمعه زجار اما دیر شده است سیاوش به سپاهیان ایران دستور حمله می دهد سپاهیان توران در برابر دروازه برخ ایستادگی می کنند روز پیاپی دو جنگ بزرگ بین ایرانیان و تورانیان در سپاهیان پیاده ایران سراسر برخ را تسخیر می کند سپهرم که با سپاهیانش از جیهون گذشته است ناگزیر به قبنشینی شده بار دیگر از جیهون گذشته به سوی افراسیاب می سیاوش از این سو به پاسخ نما سوی برخ چون با لشگر بران چو تنگ اندر آمد از ایران سپاه نشاگست کردن به پاسخ نگاه نگه کرد گرسی وزه جنگ جوی جز از جنگ جستن ندیدید چون چو ایران سپاه اندر آمد به تنگ به دروازی برخ برخواست برخ برخ برخ جنگ دو جنگ گران کرده شد در دو روز بی آمد سیاه بخش گیهی پروز یاده به برخندر آمد گران برخ برخ برخ رشد گریزان سپه بدان روی آب بشد با نزد افراسیان سپاهیان توران شکست خورده میگریزند. سیاوش پیروز مندانه در بلخ آزاد شده بر تخت نینشیند و گزارش این پیروزی را به پدر به کیکاهوس می نویسد و از او اجازه می خواهد از جیهون گذشته به جنگ افراسیاب به رود سیاوخش در برخ شد با یه یکی نامه فرمود نزدیک شام نبشتن به مشک و گلاب و عبیر چنان چون سزا بار بر حریب نخست آفرین کرد بر تردگاه از اون گشت و خداوند خورشید و گردن دماغ فرازنده تاج و تخت و کلاه کسی را که خواهد مر آرت کسی را کند سوگوار و نجم چرا نه به در؟ نه چون خیرت ترد باید بدین ره نمون. از آن دادگر کو جهان آفرید عبا آشکارا نهان آفرید چنان آفرین باد بر شهریار همه نیکوی باد فرجام کار به بل آمدم شاد و پیروز بخت به فر جهاندار با تاج و تخت سه روزم در این کار شد روز کار چهارم ببخشود پروردگار سپه به ترمز شد و بارمان به کردار ناوک بجست از کمان کنون تا به جیهون سپاه من است جهان زیر فرد کلاه من است به است با لشک رفراسیا سپاه و سپه و بد بدان روی آب گریدون که فرمان دهد شخیار سپه بگذرانم کنم کارزا سیاوش اجازه میخواهد در پی دشمن او هم از جیهون بگذرد سرد کیکاووز شادمان نامی پسر را دریافت می کند و در پاسخ به اون نامی نوشته را آفرین میگوید که کیکاووز به سیاوش می نویسد بهتران است که در گذشتن از جیهون شتاب به خرج ندهی چه به ترک هیلگر و رزمنده است تو در جنگ جستن با او شتاب نکن او خود به جنگ تو خواهد آمد چو نامه بر شاهی رون رسید سر تاج و تختش به کیوان رسید. به یزدان پناهید وزو است بخت. بدان تا به بار آیدان نوده رخت. به شادی یکی نامه پاسخ نبکش. چو روشن بهار و چو خرم بهش. از آفاریننده خور و ماه. جهاندار و بخشنده تاج و گاه. تو را جاودان شادمان باد دل. ز درد و بلا گشت آزاد دل. همیشه به پیروزی و فرهی کلاه بزرگی و تاج مهی سپخت بردی و جنگ خود خواستی که بخت و هنر داشتی راستی همیشه هنرمند بادتند رسیده به کام دل روشند از آن پس که پیروز گشتی به جنگ به کارندرون کرد باید برنج نباید پراگنده کردن سپاه به پیمای روز و بیارای گاه که پیشو ریمان است که هم با نشاد است و هم با تن است همان با کلاه است و با دستگاه همی سر بر آورد ستابان ما مکن هیچ بر جنگ جستن شهبو به جنگ تو آید خرافسیان در این سین روی جیهون همین دامن خیش در خون کشد از آن سو جاری برادر افراسیاب که شتابان خود را به شهر سو سرفرماندهی افراسیاب رسانده گزارش تلخی از شجاعت و جسارت سیاوش و رستم و سپاهیان ایران به برادر میدهد. آنقدر از شجاعت ایرانیان می‌گوید که افراسیاب خشمناک ناکزو او خواهد بس کند آنگاه دستور می بس بزم و شادی برپاش شود و در جامحای زرین می بنوشند و سوق را چون چینیان آزین ببندند از آن سوچ و شیر مرد بیامد بر شاه توران چو گرد بگفتان سخنهای ناواک و تق آمد سپه و سیاموش به برق سپه کشت سپاه سپه بیکران و سی جنگ به هر یک زما بود پنجاه بیش سرفراز با گرزه گاف میش پیاده به کردار آتش بودند سپردار با تیر و ترکش ناطرف کردار ایشان عقاب یکی را سر در نیامت بخوا روز و سه شب بود هم نشان قمی شد سر و اسب گربش کش ها طرفو چون آتش تشفراق سیا کندین چه گوی زارم اق در چنان بنگری که گفتی میانش بخواهد وری یکی بانگ برزت براندش سپیش پیش کجا خواست راندن برو خش بخیش بفرمود. از دارن هزار بخانی و از بز بزم سازید کار آدی روزی به بس و میگزاری گذشته است. و شب هنگام افراسی به بستر خواب میرود هنوز از شب چندی نگذشته که افراسی چون تبداران، زنان و عرقریزان از خواب برمیخیزد کابوس دهشتناکی بیده است برادرش گرسیوست از او میپرسد چه شده است و افراسیاب به او میگوید مرا سخت در میان بازوان گیر تا آرام گیرد شم میادند و افراسیاب کاغوس خود را شهر میدهد که چگونه ایرانیان به دنبال جنگ بزرگی او را دست بسته به نزد کیکاغوس میبرند و کیکاغوس که تنها دو هفته از عمرش گذشته است با شمشیر او را به میکند و او از درد شمشیر آسان از خواب برخاست، است بر ایشان به شادی گذر کرد. چو از شد حور گیتی فروز به خواب و به آرامش آمد شتاب، به غلطی بر جامعه افراسیان چو یک پاس بگذشت از آن تیر شب چنان چون کسی بازگوید زد تب خروشی بر آمد افراسیان بلرزید بر جای آرام خواب پرستندگان تیز برخواستند خروشیدن و قلقل آرازدند چو آمد به گرسی و از آن آگهی که شد تیر آین تخت به تیزی بیامد به نزدیک شاه ورادید بر خاک خفته برا به بر در گرفتش بپرسید از او این داستان با برادر بگو چنین این پاسخ، پرسش مکن، و گوی این زمان هیچ با من سخن. بدان تاخت باز یابم یکی به برگی رو سختم به دارم برآمد که آمد به خوش جهان دید با ناله و با نهادند شم و بیامد به تخت همین بود لرزان به سال درخت بپرسید درسی از نامجوی جوید بک شگفتی بگو چون گفت پر پرمای افراسیان هرگز هرگز کسی این نبیرم بخواب چون چون شب تیر من دیدم ز پیر و جوان نیست نشنیدم بیابان پر از مار دیدم بخواب جهان پر ز گرداست وان پر اقاب زمین خشک شخی که گفتی سپه به دو تا جهان بود نن موکه سراپرده من زده بر چران به گردش سپاهی ز گنداوران یکی باد برخواستی پرس گرد درفت که مرا سر کرد سار گرد برفتی که جوی خون سرا پرده و خیوه گشتی نگون و از این لشگر من وزون از هزار مرید سران و تنفگند خار سپاهی از ایران چو باد دمان چه نیزه به دست و چه تیر و کمان همه نیزه هاشان بار و آن هر سواری سری بر کنار. من تاختندی سوار سیه پوش و نیزه بران ست هزغار برنگ گیستندی ز جایرش نشست مرا تاختندی همین بست دست نگه کردم این اینک. هر هر سوبستی ز پیوسته پیشم نبودی کسی مرا پیش کابوس بردی دوان یکی باد سرنامور پهلوان یکی تخت بودی چه تابنده ما نشسته بر گرد کابوس شاه دو هفته نبودی و را سال بیش چودیدی بی مرا بسته در پیش تیش دمیدی به کردار قرندمید میانم به دونیم کردی به تیش خروشیدنی منفراوانز در مرا نالب و در بیدار کرد از برادر را دلداری میدهد که این خواب خوابی نکوست اما افراسیاب آرام نمیگیرم. دستور می‌دهد خواب گزاران شود آنها را سخت میترساند که اگر خواب خود را با شما بگویم نباید دهن گشایید و از آن با کسی سخن بگویید آنها را زر و سیم فراوان می‌بخشد و خواب را باز میگوید. اما هیچ کس خواب جرأت باز گفتن راز و تعمیر این کابوس دهشتناک را ندارد جز یکی از آنها که به افراسیاب میگوید اگر سوگند میخوری و زبان می دهی که خون مرا نریزی حقیقت این خواب را برایت باز خواهم گفت و افراسیاب و زنها را امان می دهد و خواب گذار خوابش را چنین تعبیر بیداری سپاهی به سرکردگی شاهزاده جوانی به نام سیاوش به جنگ تو آمده اگر با او به جنگ برخیزی خانمان تو و توران زمین به باد خواهد رفت اگر سیاوش به دست تو کشته شود به توران زمین هرگز نتاجی میماند و نسری که تاج بر سر بگذارد که اگر شوی و به آسمان روی مکافات ریختن خون او را پس خواهی آمد. زبان آوری بود بسیار مغز کجا برگشادی سخنهای نمز چون این گفت از خواب شاه جهان کنم آشکارا نهان به بیداری اشون سپاهی گران از ایران بیاید دلاور سران یکی شاهزاده به پیشندرون جهان دیده با اون بسی رهنمون بران تالش برگسی کرد شاه که این بوم گردد به بر تبا اگر با سیاوش کند شاه جنگ چو شود روی گیتی به رک ز ترکا نماند کسی پارسا قمی گردد از جنگ او پادشاه اگر او شود کشته بر دست شاه به توران نماند سر و تخت و گاه سراسر پرا گردد زمین ز بهر سیاوش به جنگ و به چین به تانگاه راستی که ویران شود کشور از کازدی جهاندار اگر مرغ گردد بپر بر این چرخ گردان نیابد گذرد از این سان گذر خواهد سفر گهی پرز خشم و گهی پرز بر افراسیاب ترسیده است و ترس خردش را به جای آورده است پس به برادر میگوید نباید به جنگ سیاوش شوم. نه او کشته خواهد شد نه من و نه کی که توزی خواهد کرد بگذار به سرزمینی که پس از منوچه اسمت قسمت ما شد بسنده کنید شاید این بلاها از سر ما بگذارد اگر چشم آز بر گنج دنیا ببندم رنجم کم خواهد شد من جزان چه روزگار برایم خواسته است بیشتر نمیخواهم آنگونه باید رست و که گردون ما را کشته است قمی شد چو بشنی افراس یاد بر جنگ جستن شتا به و از اون راست ها برگوشاد نفته سخنها بسی کرد یا گر من به جنگ سیاوش سپا نرانم نیاید کسی چیده نه او کشت آگه به جنگ و نمن برا ساگه دست گفت گوگن جمن نه کاهوز خواهد من نیز کین نه آشوب گیرد سراسر زمین به جاگ جهان جستن و کارزار مبادم جز از آشتی هیچ کام درستم به نستی چو سیم همان تاج و تخت و فراوان گوهد من او چهر دیدی به بخشید راست همو خیشتن کم نخواست از آن نیست کتک کنم دست خیش زمینی که بخشیده بودند پیچ مجر چین بلا حاز من بگذرد عذابیند و آتش و رو و چشم زمانه بدوسم به گنگ سزدگر گر هم نخواهد برند نخواهم زمانه جزان کونه بشت چنان روز شاید که گردون بکنشت پس افراسیاب بزرگان توران را گرد می آبرد. نزد آنان خستو می شود اعتراف می کند که همیشه جنگ خواسته است کینه توزی کرده است زندگی ها بر باد داده است شهرستان های بسیاری را بیمارستان کرده است و چون پادشاهی چنین کند آرامش از گلستان و گیاهان و حیوانات نیز دور می شود چه رسد به آنگاه ها؟ آنگاه فراسیاب به بزرگان و دلاوران توران آگاهی می دهد که از بدی و بدکاری سیر آمده است و میخواهد به راه ایزدی گام بگذارد و به آنچه دارد بسنده کند افراسی ها به سرداران و بزرگان توران می گوید اگر شما نیز میپسندید پیامی برستم فرستاده با سیاوش از در آشتی درآیم چوب بگذشت نیمیز گردان سپه درخشنده خورشید به موچهر بزرگان به درگاه شاه بدن پرستنده و با کلاه آمد یکی انجمن ساخت با بخردان خوشیوار و کارازمود ردان به دیشان چونین گفت از روزگار نبینم همین بر جز از کار ساخت بسا نامداران که بر دستمان من شد به جنگندران انجامن بسی شاستان گشتی ماستان بسی گلستان نیز شد خواستان. بس بسا باکان رازگاه من است به هر سو سپاه من هست. زمیدادی شخیاغ جهان همه نیکوی ها شبت در نهان نزاید به هنگام بردشت بود شبت بچه باز را چشم بود به برد ز پستان نخجیر آب در چشمه خیش دید شبت در جهان چشمه آب خوشت ندارد بنافند در اون بوگ موشت به کشی گریزان شبت راستی پدید داید از هر سوی کاستی. مراسی شد دلز جنگو پدید همی جوز تا هم ره زدی کنون دانش و داد باز آبنید به جای قم و رنج ناز آبنید برا ساید از ما زمانی جهان نباید که مرگ آید از ناگهان دو از جهان زیر پای من است از ایران و طولان سرای من است. نگه کن که چندینز گنداوران بیارند هر سال باشه گران گریدون باشید هم داستان برستم برستم یکی داستان در آشتی بازی آوخش نیست به جوگم فرستم بیندازه چیز سران یک به یک پاسخا راستن همه خوبی و آشتی خواستن تو شخیاری و ما چون رهی بران نهاده که فرمان دهی همه باز گشتن سر پرزه داد نیامد کسی را غم و رنج یاد افراسیاب بیدرنگ برادرش گرسی را با هدایایی شگفت و ارزشمند که تا آن روزگار هیچ کشمی آن چنان پیش کشی ندیده بود راهی برخ کرد افراسیاب به سیاوش پیام داد زیستان بران گونه دارم امید که آورد روز خرام و نبی بیانگیخت از شهر ایران تو را که پرمختید از دل ایران تو را به وقت تو آرام گیرد جهان شبد جنگ و ناخوبی هم در نهان چون گرسی وضایت به نزدیک تو بیا راید ان رای که تو چنان چون به گاه فریدون گرد تگیتی گیتی ببخشش به, به گردان سپرود ببخشیم و آن رای باز آوریم زد جنگ و پای باز آوریم تو شاهی و با شاهی ران بگو مگر نرم گردد سر جنجون افراسیاب پیام آشتی جویانه و ستا شامیزی نیست برای رستم میفرستد. پرستند گرسیوز و هدایای افراسیاب از آب جیهون میگذرند و به برخ می رسند. سیاوش و رستم گرسیوز را با روی خوش میپذیرند و در پاسخ پیشنهاد آشتی و صلح افراسیاب از گرسیوز میخواهند یک ای میهمان آنان باشد تا در این کار بیندیشد آنگاه رستم و سیاوش با یکدیگر خلوت میکنند رستم به افراسیاب بد گمان است او افراسیاب را میشناسد او مرد آشتی و آرامش نیست مباد آنها را قافل گیر کنه پس دستور می‌دهد دهد دارانی بیرون برخ در اطراف جیهون آماده باشند. سیاوش نیز در پذیرفتن پیشنهاد آشتی افراسیاب تردید دارد. پس برستم می‌گوید بگذار افراسیاب را آزمایش کنین و از او بخواهین که تن از بستگان و نزدیکان خونی خیش را جهت راستی گفتارش نزد ما گروگان بفرستد. آنگاه از پدرم که کاهوز دستور آخرین را بخواد رستم می پذیرد سیاوش ز رستم بپرسید و گفت این راز بیرون کشین از نخفت که این آشتی جستن از بخر چیست نگه کن که تریاک این زخ چیست سپی وستی خون به که اوی نگه تا کدام صد جنگجوی گروگان فرستد به نزدیک ما کند روشن این رای تاریک ما نباید که از شد زبیم همین طب سازد به زیر گلین چون این کرده باشین نزدیک شاه فرستاد باید یکی نیکاه برد زین سخون نزد او آگهی مگر مغز گرداند از کین توهی چون این گفت دوستم این است رای چون این روی پیمان نگاهده بچوند مرگاه گرسی برای دریافت جواب به نزد رستم و سیاوش می رسد سیاوش بدون می گوید از پیشنهاد آشتی تو در اندیشه و حراس بودم اکنون هر دوی ما من و رستم دلیر بران شدیم تا از کین جویی دست کشیم اما شرط آن است که نزد افراسی ها پیام فرستی که اگر راست میگوید و خواستار دوستی است یک تن از گردان و دلاوران تورانی یا که از بستگان خونی او هستند و رستم آنها را نام میبرد به نزد ما گروگان بفرستند بانگاه سپاهیانش را از همه شهرهای ایران زمین که در دست اوست فرا بخاند و به توران باز کردند من نیز از پادشاه ایران پدرم خواهم خواست که به آشتی سپاهیان ایران را از مرز پرا بخانم به شب گیر گرسی وز آمد بدم. چنان چون بود با کلاه و بیامد به پیش سیاوش زمین ببوسید و بر برشغاه کرد آفرید سیاوش دو گفت از کار تو پرندیشه بودم ز گفتار تو کنون رای هردو دو بران شد درست که کینه دل را بخواهیم شود. تو پاسخ فرستی به افراسیاب ها اگر شد سرت زیر خواب اگر زیر نوشن در اون زه نیست دلت راز رنج نیست زه گردان که رستن بدانت همی کجا نام ایشان بخانت همی چو پیمان همی کرد خواهید درست تنی صد که پیوسته خون توست بر من فرستی به رسم نباها. بدین خوب گفتار تو برگوان و دیگر که ایران زمین هرچه هست که آن هارا تو داری به دست به پردازی و خود به توران شوی زمانی ز جنگ و زکین بقی نبید نباشد جز از راستی در میان به کینه نبندم کمر بر میان پرستم یکی نام نزدیک شاه مگر باشتی باز خانت سران برفتن گرسی وزن در زمان به بکردار باد دمان بدو گفت خیر من احسر به خواب برو تازران نزد افراز یاد بگویش که من کیز بشتافتم کنون هرچه جستی همه یافتم گروگان هنی خواهد از شخیار چو خواهی که برگردد از کارسا سیوز به برادرش پیام میفرستد که آنچه آرزو داشتی برآورده شد سیاوش با ما از در آشتی در خواهد آمد چنانچه ستن از بستگان و خیشان خود را نزد او گروگان گذاریم سیاب لختی میاندیشد. اما چاره دیگری جز پذیرفتن پیشنهاد سیاوش و رستم ندارد ستن از بزرگان و بستگان خود را به گروگان به برخ و نزد سیاوش می وانگاه شهرهای سقد و سمرقند و چاج و سپنجاب را نیز از نیروها و سپاهیان خود تهی کرده به ایرانیان واگذار می و خود و سپاهیانش به کنگ با پس می‌نشینند. فرستاده آمد بدادش پیان سراسرز گرسی و زنید و گفته فرستاده بشنید شاه فرابان به پیچید و گم کرد را همین گفت ست من، خیشان من گریدون کم گردد از انجمن شکستن راید به دین باگاه نماند بر من کسی نیخوا اگر گویم از من گروگان مجروی درو قایدش سر به سر گفته فرستاد فرستاه ماید بر اونما اگر بی گروگان ندارد روا اگر کنگ بالا من بگذرم خرد من باشم به هست به دانسان که رستم همین نام برد خیشان نزدیک صد برش بر شاه ایران فرستاده دادشان بسی خلعت و نیکویی دادشان بفرمود تا کوس با کرنای زدن و فروح هشت پرد سران بخاراب و سقد و سمرقند و چاچ سفنجاب و آن کشور و تخت آج توهی کرد و شد با سپه سوی کنگ بهانه نجست و فریب و درن. گرسیوز با خبر باز پسنشینی سپاکیان توران به همراه صد گروگان به بخ و به نزد رستم و سیاوش باز میکرد رستم به گرسیوز حدایه های فراوان میدهد و گرسیوز زمین عدب بوسیده بسی از سیاوش ستایش میکند و به سوی کنگ و برادرش افراسیا باز میگردد اینک رستم آرام گرفت باشه شگفتی دریافته است که افراسیاب به راستی خواستاره آشتی و سازش است. پس با سیاوش به رای زنی می‌پردازند که چه کس این رویداد را به کی آگهی دهد. رستم به سیاوش میگوید خوی بد پدرت را می‌شناسی هیچ کس برای بردن این پیام بهتر از من نیست مگر من بتوانم او را از مشخاهی باز دارم و به آشتی با افراسیاب برانگیزم. چون این گفت با او یا به تن. از این درتییاارت گشادن دهن. هم. همان از کاووس کسبفیش بود ز تیزین نکهد نرگز وزود. اگر من شوم نزد شاه جهان کنم آش کارا بر او به زمین گرد و فرمان دهی ز رفتا نبینم جز بهی سیاوش ز گفته شاد گشت حدیث فرستادگان استادگان گشت. سیاوش پیشنهاد رستم را پذیفته به پدر ای نوشته و پس از ستایش خداوند ماجرای نبرد دو دروزه خود با تورانیان و سپس درخواست آشتی افراسیاب و باز پسنشینی تورانیان از شهرهای ایران را به او آگاهی داده از او اجازه می تا پیمان آشتی با تورانیان ببندند سپخدار بنشست رستم به هم سخن رفت هر گونه برمیش و کم بفرمود تا رفت پیشش دبیر نبشتن یکی نامی بر حریف نخست آفرین کرد بردادگر کزودی نیرو و فر و خوند خداوند خوش و زمان و توان خرد پروراند همی باروان از او باد بر شخیار آفرین جهاندار و از نامداران گزین، رسیده به هر نیک و بد رای و ساتون خرد باد بالای رسیدم به بلخ و بخورم بخار، همه شادمان بودم از روز کار زمان چون خبریافت افراسی آب، سیاه شد به جامن درش روشنان بهدانست کانکار دوشخار گشت جهان تیره شد وقت او خار گشت بیامد برادرش با خاسته، بسی خوب رویانه آراسته که زنهار خواهد شاه جهان سپارت بدو دو تاج و تخت مهان بسنده کند زین جهان مرز خیش بداند همه مایه و عرض خیش از ایران زمین نصفرد نیز خاک بشوید دل از کینده و جنگ پاک زخیشان فرستاد صد نزد من به دین خواهش آمد گفه پیلتن گرو را ببخشد ز مهرش ززاز که بر مهر او چهر او بر گواست تمتن بیامد به نزدیک شاه چنان چون سزد با درفش و سپاه همتن رستم به سوی پارس حرکت می کند و گرسی به کنگ و به نزد افراسیاب می رسد و سخت استیابش و بزرگواری و بخشندگی او ستایش می کند در پارس از رستم با شادی استقبال می رستم به نزد کیکاوز رفته مراسم عدب به جایی می آورد. که رستم را می نوازد و سیاوش میپرسد پرسد و دلیل آمدن رستم را جویا می شود. رستم سیاوش را ستود نامی او را به پادشاه ایران می دهد. چون دبیر نامه را برای که کاووز می خواند. رنگ چهرش از خشم چون گیر سیاه می شود و به رستم می گوید سیاوش جوان و بی تجربه است. تو چرا با آن انشناختی که از افراسیاب داری سخنان او را باور کردی. من میخواستم خود به این جنگ روم هم نگذاشتم افراسیاب آف شما را با آن هدایا و مردری آن میراسی که از بیگناهان غارت کرده فریفته و صد ترک بینژاد را به نزد شما گروگان گذاشته من اینک برای سیاوش پیام میدهم که همه هدایای او را بسوزاند و آن صد گروگان را به نزد من بفرستد تا دستور دهم سرشان را از تنشان جدا کنم. قونی با سپاهیاند با آنجا بازگرد و دست به قارت و کشتار و سوختن بزن تا افراسیاب ناگزیر به جنگ با تو برخیزد آنگاه کارش را یکسره کن و آن روی چون رستم شیرمر بیامد بر شاه ایران چو گرد به پیش آمد به کشکرد دست برامد آمد سپهبد جای نشست بپرسید پرسید و بگیرفتشان در کنار از فرزند و اسگردش روسکا ز گردان و از رزم و کار سپاه و آن تا چرا بازگشتوزه را نخست از سیاوش زبان برگشاد، ستودش فراوان و نام بداد چو نام بروخاند دبیر رخ شهریار جهان شد چو گیر بروستم چونین گفت گیرم که اون جوان است و بدنا رسیده برو چو تو در جهان سر به سر به جنگ از تو جویند شیران غنم عدیدی بگی های افراسیاب که گم شد ز خرد و آرام و قاب مرا رفت باگست کردم درنگ مرا بود با او سری پرس جنگ نرفتم که گفتن از در مرا به من تا بسیجت جهاندار نو. چو با دفره ایزنی خواست بود مکابات بد را بگی خواست بود شما را به دان مردری خواسته بدین گونه برشد دلار راسته کجا بستد از هر کسی بدین بدین سان به پیچیدتان سر به صد ترک که بیچاری بدنشاد که نام پدرشان ندارند یا کنون از گروگان کیندی شدود همان پیش چشمش همان آبه شما گر خرت را نبستید کار نمن سیرم از از کار سام به نزد سیاه فرستان فرستم کنون یکی مرد با دانش و پرفوسون بفرمایمش کاتشی کن بلند به بند گران پای ترکان ببرد برا تشمن خواسته هرچه هست نگر تا نیاری به یک چیز دست پس آن بستگان را سوی من که من سر بخواهم زتنشان تنشان گسست تو با لشک تر پرز جنگ برو تا به درگاه و درنگ همه دست مکشای تا یک سره چو گرگنده رایند پیش بره چو تو ساس گیری بدا موختن سپاهت کند قارت و سوختن بیاید به جنگ تو افراسیا چو گردد بر او ناخش آرام نخوش آرام خواه آری گونه که رستم دلیر به سیاوش گفته بود که کابوس کینه توز باز راه بیخردی در پیش میگرد رستم او را پند میدهد به او یادآوری میکند می کند که گفته بودی آغازگر جنگ نباشیم تا افراسیاب به جنگ ما آین اینکه افراسیاب آشتی میخواهد و سیاوش بی جنگ این همه قنیمت به دست آورده و شهرهای ایرانیان از تورانیان پس گرفته شده است پیمان شکستن و جنگ جستن خردمندانه نیست رستن به که کاووس میگوید از فرزندت از سیاوش راست و دلیر مخواه که پیمان بشکند که زیر بار نخواهد رفت پسرت سیاوش را بر خود مشروع هم تن به دو گفت ای شهریار دلت را دین کار قمکین مدام سخن بشنو از من تو ای شهر نخوست از آن پس جهان زیر فرمان توست تو گفتی که بر جنگ افراسیاب مران تیز لشگر به آب بمانید تا او بیاید به جنگ که او خود شتاب آورد بی درنگ ببودیم تا جنگ جوگت دروست در آشتی او گشاد و خوست کسی کاشتی جوگت و سور و بعض ننی و پیش رفتن به رسم و دیگر که پیمان شکم پیشگاه نباشد پسندیده نیک ها زیابش پیوز بودی به جنگ برفتی به سان دلاور پلنگ چه جوستی؟ از تاج و تختونگین تناسانی و گنج ایران زمین همه یافتی جنگ تیر ماجو دل روشنت باب تیر ماجو که افراس یا این سخنها که گفت به پیمان شکستن بخواهد نهود هم از جنگ استن نگشتیم سیم به جای از چمشیم و چنگار شیم پیمان شکستن مخواه دروگی کهی در خورد ما کلاه نهانی چرا گفت باید سخن سیاهوش زپیمان نگردد زپن و این کار کندیش کرده از شاه براشون بدی نابر پیشکا که کابوسه بیخرد خشم یه نانه میگوید اندیشه آشتی با دشمن را تو در سر سیاهوش انداختی و آسودگی خود را درخشش تاج و تخت من ترجیح دادی من اینک توس را به جای تو به این نبرد میفرستم و برای سیاوش نیز پیام خواهم داد که اگر خیال نافرمانی دارد و از جنگ پرهیز می کند فرماندهی سپاهیان را به توس بسپارد و خود با نزدیکانش به نزد من بازگردد تا سزای او را آنچنان که در خور رفتارش است به او بده رستم از جای برمیخیزد. و به که میگوید اگر توس شایسته از رستم بهتر آن است که رستم در جهان نباشد رستم چنین میگوید و با خشم کاخ را تک میکند چو کاووس بشنید پرز خش برا شفت از آن کار و بکشا چشم به رستم چونین گفت شاه جهان ایدون نماند همین در رخان که این در سر او تو افگرده ای. چون این بیخه که دلش کندی ای تناسانیه هیچ جستی بدین نه افروزش تاج و تخت و نگین تو ای تا تو سفختار توس ببندت بر این کار بر پیل کوس من اکنون هیونی فرستم به برد یا چین نامه ای با سخنهای تخت سیاوش اگر سرز پیمان من بپیچد پیچت نیاید به فرمان من به توس سپه و سپارت سما خدا و ویشگان گردد زرا ببیند زمن هر چند در خورست گرو را چنین داوری در سر است همین گشت رستم باباز گفت گردون سر من نیارد نهفت اگر توس جنگی تر از است چونان دان که رستم زگیتی کم است به گفتین اینو شد از پیش پر از خشم و کین و پر از رنگ روی همان در زمان توس را خان شاه بفرمود لشکر کشیدن بدا چو بیرون شد از پیش کابوس توس بفرمود تا لشکر و بوغ و کوس به سازند و آرایش ره کنند و از آن رازگه راه کوتاه کنند توس پرا خانده که قابوس او فرمان حرکت می‌دهد و توس نیز با سپاهیانش به سوی بلخ و سیاوش به راه می‌افتاد. <تصفيق> که قابوس برای سیاوش نامه‌ای می‌ترستد و به او میگوید شاید سرگرم شدن بازران را به نبرد ترجیح دادی. رستم نیز به هدایایی که به دست آورده خرسند شده است. که کاووس به سیاوش دلیر می نویسد با رسیدن این نام گروگانهای افراسیاب را دست و پاوسته بر بنشان و به نظر من نبرد بانگاه نبعد با افراسیاب را آغاز کن. اما اگر مهر دشمن را به دل گرفته ای و نمیخواهی با آنان پیمان شکنی کنی، فرماندهی سپاهیان ایران را به توز بسپار و خود هرچی زودتر باز کرد. <تصفيق> چون نامه که کابوس به سیاوش دلیر میرسد و از رفتار پدرش با رستم آگاه میگردد دلش به درد میآید و با خود نیندیشد چه کند اگر گروگان ها را به نزد پدر بفرستد بیگمان آنها را خواهد کشت و اگر با افراسیاب به جنگ برخیزد خداوند او را نخواهد بخشود و اگر سپاه را به توس به سفارت و بازگردد بار دیگر گرفتار دسیس های احریمنی سویابه خواهد شد چون نامه به نزد سیاوش رسید بران گونه ناخوب گفتار دید درستاده را خواند و پرسید و جست از او کرد یک سر ها درست به گفتان که با پیل تن رفته بود ز توس و ز کابوس کاشفته بود سیاوش چو بشنید گفتار اوی ز رستم قمی گشت و از کار او. ز کار پدر دل پرندیشه کرد ز ترکان و از روزگار نبرد همی گفت صد مرد گرد و سوار ز خیشان شاهی چونین نامدار همه نیک خواه و همه بیگناه اگر شان درستم به نزدیک شاه نپوسد، نه اندیشد از کارشان همان کند زنده بردارشان به نزدیک یستان چه پوزش کنم بد آمد ز کار جهان برتر برای جنگ آورم بی گناه، ابرخیر با شاه توران سپاه جهاندار نبسنددین بدز من، گشاین بر من زبانند جمن. باز کردم به درگاه شاه، به توس سپه، بد سپارم سپاه، نیابم ز سودا به خود جزبتی، ندانم چه خواهد رسیدی. سیابش در مانده و دلتنگ و در نبود رستم بران میشود که با سرداران دلیر و جوان خود بهرام و زنگ شاوران از درد و تردید خود سخن بگوید مگر آنها بتوانند او را از این بمبست پریشانی به پس آن ها را به نزد خود فرا میخواند و از ماجرای غمانگیز خود با سودا به سخن میگوید و اینکه برای رهایی از های او و خشم پدر به این جنگ آمده است و اینکه با تورانیان به آشتی رسیده است و شهرهای جان را از ایشان باز ستانده است پدر از او می كه که پیمان شکنی کند و با تورانیان به جنگ برخیزد پسندش نیاید همین به رنج و به آزار من به خیره همین جنگ فرمادیدم بترسم که سوگن بگزایدم همین سرزه ازنا نباید کشید فراوان نکوهش نباید دو گیتی همین برد خواهد سمن بماند به کام دل احرمن آن پس که داند که از این کارساز، چرا برکشد گردش روز کار نزادی مرا گر زاد مرگ آمدی برستم که چند نیم بلاها به باید کشید سگیتی همه زهر آید کشید رختیستیم برکشید بلند که بارش همه زهر رو برگشت میزند بر این گونه پیمان که من کردم به یزدان و سوگن ها خوردم اگر سر بگردانم از راستی فراز آید از هر سوی که پراگنده شد در جهان این سخن که با شاه توران فکندیم من زبان هر هرکس به بد به هر جای بر من چنانچون سزد به کین باز کشتن بریدن زدیم کشیدن سر از آسمان و زمین چون این کی پسندت من کرده کار کجا برده هد گردش روز کار شدم کشمری جوی من در جهان که نامم ز کاغوز گرده نحن. وشن زمانه برانسان بفند که فرمان دادار گیخان بفند سیاوش به این دو دلاور ایرانی میگوید بهتر است به گوشه ای از دنیا روم که هیچ کس حتی پدرم نیز نداند که کجا هستم آنگاه سیاوش از زنگ شاوران میخواهد که همه گروگانهای افراسیاب را همراه خود بردارد و به نزد افراسیاب رود و را بگوید. و از بهرام دلاورد پسر جوان گودرز پیر میخواهد که تا رسیدن توس فرماندهی سپاهیان ایران را به عهده گیرد. توی نام و زنگ شاوران. بیا دل را برنجی. برو تا به درگاه افراسی ها درنگی مباشو من اکثر بخواب گروگان و این خواسته هرچه هست ز گنج و ز تا جز تخت نشست چون این هم همه باز بر پیش اوی بگویش که ما را چه آمد بروی بفرمود بهرام گودرز را این نام بر لشکر و مرز را سپردم تو را پاک با پیل و کوست بمان تا بیاید سپه توست بدو دوده تو این لشکر رو خواسته همان کار ها یک سرا راسته یک ها یک بدو بر شمار هرچه هست ز گنج و ز تاج و تخته نشست دو سردار دلیر و جوانی ایرانی از سرنوشت شوم شاهزادی خود سخت اندوه گین شده اشک و چشمی آورد و سود به خیانتگار نفرین میکنن آنگاه بهرام به سیاوش میگوید بار دیگر به پدرت نامه‌ای بنویس و بخواه که تمتن رستم را به نزدت بفرستد و تو بخواست او جنگ را آغاز کن دیگر آنکه اگر برای او هدیه و نوا فرستی خورسند خواهد شد زر و سیم و نوایی که موجب شادی تو نشده است به چه کارت خواهد آمد کاری نکن که ما تو را از دست شاید نوشته و راز آسمان این است چرا کار را به درازا میکشانی سیاوش و آنان میگوید درست که فرمان شاه برتر خورشید و ماه است اما مرد دلیر فرمان خداوند را برای خوشنودی شاه زیر پای نمیگذارد و دیگر اگر برای او سیم و زر و نوا هم فرستم او باز از گذشته یادخوار وگر جنگ نکرده نزدش بازگردم دو دوچار خشم و خروش او خواهم شد پس اگر شما با من همراه نیستی بگویی تا خود چاره کار خود کنم نپس رفتزان دو خرد مند پند دگرگونه بود راز چرخ بلند چون این داد پاسخ فرمان شاه برانم که برطرز خورشید و ماه ولی کن به فرمان یزدان دلیر نباشد که همه نه پیل و نه شیر کسی کوز فرمان یزدان به تافت شد خیشتن را نیافت زبهر نوا هم های سخنهای دیرینه یاداردون و باز بازگردم از این رازگاه شبم کار نا کرده نزدیک شاه همان خشم و پیگار بار آورد سرش که در کنار آورد اگر تیرتان شد در از کار من به پیچی زه تنزه گفتار من رستاد خود باشم و رهنمان بمانم بر این دشت پرد سران کسی کو نبیند همین گنج من چرا برگمارم بر اون رنج من با شنیدن سخنان سیاوش دو سردار دلیر و جوان عشق ریخته به او میگویند آماده جنفشانی برای او هستند سیاوش به زنگ شاوران میگوید به نزد افراسیاب برو به او بگو از آشتی بات و جنگ با پدر بحری من شد اما من از پیمان خود تو نخواهم گذشت اما اینک راه بازگشت به نزد پدرم برایم باقی نمانده است بگذار از قلم روی فرمان روایتو گذشته به سرزمین دوردستی روم که نامم از پدر پنهان شده از خوی بد او در امان بمانم سیاوش چو پاسخ چنین داد باز به پشمور جان دوگردن فراز زبیم جداییش گریان شدند چو بر آتش تیز بریان شدند همی دید چشم و دل روزگار کن در نهان چیست باشه یار نخواهد بودن نیز دیدار اوی از آن چشم گریان شد از کار او چون این گفت زنگ ما بندی به مهر سپه و دلها فدای تو باداتن و جان ما چون این باد تا مرگ پیمان ما چو پاسخ چون این یافت از نیک خواه چون این گفت با زنگ بیدار شاه شو شاه توران سپه را بگوی که این کار ما را چه آمد بروی از این آشتی جنگ بخر من است همه نوش تو درد و زهر من است زه پیمان تو سر نگردد توی وگر دور مانم نمزه تخت مهی جهانداری پناه من است زمین تخت و گردون کلاه من است و دیگر که از این خیر ناکرده کار نشاده است رفتن بر شهر. یکی راه بکشای تا بگذرم به جایی که کردی صدا آبش خرم یکی کشوری جوی من در جهان که نامم زه کاووز گردد نهان زه خوی بد او سخن نشدم زه پیگار او یک زمان بقندم زنگ شاوران صد دلاور تورانی بستگان افراسیاب را که نزد سیاوش به گروگان گذاشته شده بودند، برداشت برداشته به شتاب به سوی افراسیاب حرکت می کند. چون زنگ با همراهانش به کنگ می رسد با شکوه بسیار او را پذیرا شده مهبانی ها می کند. و زنگ را باز گفته نامه و پیام سیاوش را به او میدهد دهد با خواندن نامه سخت از کیکاووس خشکین شده از رنج سیاوش غمگین می شود دستور و مشاور بزرگ خود پهلوان تورانی پیان خردمند را به خلوت خود خانده از او چاره این مشکل را جویا می شود پیران به او میگوید من بر این گمانم که هیچکس نباید حمایت خود را از این شاخصادی ایرانی دریق کند چه او بی گمان پاکترین، دلیرترین و خوبروترین انسان هاست که اگر پاک و شریف نبود به پیمان با تو و پادار نمی و فرمان پدر را زیر پا نمی گذاشت. آن هم به بهای از دست دادن تاج و تخت ایران تو باید به اون نامه نوشته او را به این سرزمین بخوانی او را پذیرا شده انگاه دخترت را به همسری او درآوری شاید در سرزمین ما مندگار شد و اما اگر به ایران بازگردد پادشاه ایران سرانجام تو سپاس سپاسگزار خواهد شد شاید برای همیشه آرامش و سو بین دو کشور برقرار شود به پیچید از آن نام افراسیا دلش گهشت پر درد و سر پرز تاب چو پیران بیامد توهی کرد جا سخون راند با نام ورکت خدا زه کاووس و از خام گفتار اون زه خوی بد و رای پیگار بود همین گفت و رخصاره کرد دجم زه کار سیاوش دلش پر پرز قم ترستادن زنگه شاوران همه یاد کرد از کران تا کران بپرسید این را چه دخمان کنید؟ از این راه جستن چه پیمال کنیم؟ بدو گفت پیران ای شهر یاد انو شهر بدی تاب و بد روزگاه تو از ما به هر کار داناتری به بایست ها برد تواناتری گمان و دل و دانش و رای من چونین آمدند این شاهراغ من که هر کس که بر میگوی در جهان توانا بود آشکار و نهان از این شاهزاده نگیرند باز ز گنج و زرنجان چایت ایدون شنیدم که در جهان کسی نیست مانند او از به بالا و دیدار و آغستگی به فرهنگ و رای و به هنر با آخرت نیست بیش از نشاد ز مادر چون شاهزاده نزد اگر خود جزینش نبودی هنر که زن خون صدنا بر با پدر برا و بگذاش تخت و گلا همی از تو جوید بدین گونه را ز بحر تورا تاج و تخت و گلا به کهتر ترسه پارد خلاید را ننی کونم ز راه خرد که از این کشوری مهدر او بگذرند و دیگر که کاووز شد پیرسر ز تخت آمدش کار گذرد سیاوش جوان است و با فرهی به دو ماند آین تخت مه تو را سرزنش باشد از مهبران سر او همان گردد از تو گران اگر شاه بیند برای بلند نبیگزد یکی نامه پند ماند چنان چون نوازند فرزند را نوازد جوان خرد را یکی جای سازد بدین کشورش بدارد سزاوار اندر خورش و آیندهد دختری را بده. اداره با ناز و با آب روی مگر کو بماند به نسلی کشا کند کشور و بومت آرام گاه وگر باز گردد سوی شخی ها تو را بهتری باشد از روز کار سپاسی نوبت نسل شاه زمین بزرگان گیتی کنند آفرین برا ساید از چین دو کشور مگر بدین آورید ای درش داد کرد جهان آفرین این سزاز که گردد زمانه بدیم چند راست افراسی ها از شنیدن سخنان خردمندانی پیران به او میگوید سخنانت دلپذیر بود اما شنیدم اگر کسی بچه شیراب بپروراند بزرگ کند چون شیر بچه قوی گردد به او حمله خواهد بود پیران به او میگوید اما کسی که خوی پدرش را نگرفته باشد چنین نخواهد کرد نمیبینی بینی کافوس دارد دیرینه و پیر می شود و دیر یا بر تخت پادشاهی ایران خواهد نشاست چون چنین شود هر دو کشور از آن تو خواهد شد چو سالار گفتار پیران شنید چنان هم همه بودنی ها دید پس هندیشه در آن یک زمان همیگاش گاش بر نیک و بدبر گمان چون این داد پاسخ به پیران پیر هست این سخنها همه دلپسی زکاراز موده گزیده مهان همانند تو نیستند در جهان ولی کن شنیدم یکی داستان که باشد بدان رای هم داستان چچون بچه ی شیر نرپربری چو دندان کند تیست کی این با چنگ برخی وی به پروردگارم در آوی, اوی. بدو به دو گفت پیران اندر خرد یکی شاه گناباران بین جرد. کسی کس پدر کشی و خوی بد نگیرد از او بدخوی چی سزد که کابوس دیرین گشت چا دیوی نگشتو نباید بزرش سیاوش میگیرد جهان فراخ بسیر گنج بیرنج و ایوان و کاخ دو کشور تو را باشد و تاج و تخت که یابد چون این خود مجر نیک بخد افراسیاب ها بران می شود که پند خیخاهانه پیران را بپذیرند. پس نامهی به سیاوش نوشته به او میگوید داستان تو را از زنگه شاوران شنیدم از اینکه که با تو چنین نامهبانی کرده است غمگین شدم اگر تخت و تاج و زر و سیم و خواسته میخواهی به نزد من آی که مردم توران تو را نماز خواهند بود من نیز خود به مهرتو نیاز دارم تو فرزند من باش و من پدرت آن چنان به تو میر خواهم ورزید که که کاووز پدرت چنان نکرده باشد چه اگر بگذارم از خاک من بگذری بزرگ و کوچک مرا سرزنش و نکوهش خواهند کرد چو بشنید این سخن یکی رای با دانش کند بند دبیر جهان دیده را پیش خواهد زبان برگشاد و سخن برفشاد نخستین که برنامه بنها دست به انبر سر خامه را کرد پست جهان آفرین را ستایش گرفت بزرگی و دانش نمایش گرفت شنیدم پیام از کران تا کران زبیدار دلزنگی شاوران قمی شد دلمزان شاه جهان چنان تیر شد با بات در نهان ولی تیج جز از تاج و تخت چه جوید خردمند بیدار بخت را این همه ایده را راست است اگر شهر یاری بگر خواست است همه شهر توران برندت نماز مرا خود به مهر تو باشد نیاز تو فرزند باشی و من چون پدر پدر پیش فرزند بسته کمان. چونان دان که کابوس بر تو به مهر بر آن گونه یک روز نکشاکه کجا من گشایم در گنج و دست سپارم تو را تاج و گاه نشست بدارم دارمت بیرنج فرزند وار بگی تی تو مانیز من یادگار تو بر کشورم بگذری در جهان نکوهش کنندم که و به از آن آن ترابی نیاز همی در بباش و به خوبی بساز سپاه و دز و گنج من آن توست به رفتن به نباید جوست از این رفتم از استان که من بکوشم به خوبی به جان و به تن نا و خود نسازن یزان و اندیش دل را ندارم ببند سیاوش با دریافت نامه و پیام مهرامی از افراسیاب از یک سو شاد شده از سوی دیگر غمگین می شود که ناگزیر از پناه بردن به دامان دشمن است پس نامی به کیکاووس نوشته بس پدر گله می کند که با او چنین بیداد کرده است سیاوش به پدر می نویسد از یک سو شبستان به همسرت تو سودابه چنین دردی را به جان من انداخته از سوی دیگر نیز مرا باور نکردی و ناگزیر کردی از آتش بگذرم سیاوش می نویسد از آن همه گرفتاری و خاری به سطوح آمده به این جنگ آمدم و هنگامی که با دشمن از در آشتی در آمدم و دو کشور را از بلوای جنگ و آشوب رهانیدم و شاد کردم کار مرا نپسندی آری تو دیگر چشم دیدار مرا نداری و من نیز اینک برای آنکه تو را نرنجانم از چشمت دور میشم و خود را در دهان اجده ها انداخته به دشمن پناه میبرم. چو چشمش دیدار من گشت سی برسید بوده نباشی دیر. ز شادی مبادا به او رها شدم من ز قم دردمی پشت ندانم که از این کار گردان چه دارد به راز در از کین اهسیابش فرماندهی سپاهیان همراهش را به بهرام گودر سپرده به او میگوید تا رسیدن توس سپاهیان مرا فرمانده باش آنگاه سپاهیان ایران میخواهد که تا رسیدن توس بهرام را پیروی کند و خود با آنان خداحافظی کرده و به سوی جیهون راه میافتد سیاوش با چشم گریان از یکایه که شهرهای سر راه گذشته سرانجام به شهر مرزی قدقار باشی میرسد از آن سو پیران خردمند و هزار همراهش با شکوه هرچه تمامتر به و همراهان میرسند سیاوش چو بشنید کامت سپاه پذیر شدن را بیاراست شا درفت چه سپهدار پیران بدید خروشیدن پیل و اسبان شنید بشد تیز و به در کنار بپرسیدش از گردش روزگار بدو گفت ای پهلوان سپاه چرا رنجه کردی روان را برا همه برد لندیش این بطنخوست که بیند دو چشمم تو را تند روست ببوسی پیگان سرا او همان خوب چهر دلارای او همی گفت با جهان ای داور آشکار و نهان مرا گر به نمودی روان همانا سر پیرگشنی جوان چو دیدم تو را روشن و تندرست نیاگش کنم پیش یزدان نخست تو را چون پدر باشد افراسیاب همه بنده باشند از این روی آب مرا نیز پیوسته بیش از هزار پرستندگانند با گوشهار مرا گر پذیری تو با پیرسر سفر پرستش ببندم کمن چهر غجغار باشی غرقه در شادی و سرور است اما سیاوش در دل خون میگرید او با دیدن این میهمانی ها و زیافت خواب به یاد روزگار زیستن در زابلستان در کنار رستم و زال و آنگاه به یاد ایرانش میافتد. ایرانی که شاید دیگر هرگز بدان پای پیران چشمانه اشكالودش را نبیند اما پیران در می که سیاوش چنداز غمگین و دردمند است و او را فراوان دلداری می دهد برفتند هر دو به شادی به هم سخن یاد کردند بر شکم همه شهر از آواز چنگ و رباب همی خفته را سر برام از همه خاک مشکین شد از مشک همی اصف تازی برابر پر سیاوش چاندید آب از دو چشم به بارید و زندیش آمد به خشم که یاد آمدش بوم زاول ستان بیا راست تا به کابل ستان که آمد به مهمانی پیل تن شده نامداران همه انجامن از ایران دلش یاد کرد و بسوخت به کردار آتش همین فروخت ز پیران بپوشید و پیچید روی سپهبد بد غم و درد اوی بدانست دانست کورا چه آمد میاد غمی گشت و دندان به لب برنها پیران سخت سیاوش را دلداری میدهد مهربانی ها میکند سیاوش با شنیدن سخنان مهرامیز پیران رفته رفته آرام میگیرد آنقدر آسود خاطر میشود که به جام میده دست برند سیاوش به دان گفت هارام گشت برافروخت اندر خور جام گشت به خوردن نشستند یک بادگر سیاوش پسر گشت پیگان پدر برفتند با خنده و شادمان به رهبر نجستند جایی زمان به دینسان سیاوش ایران را ترک می کند آیا بازگشتی در کار است آیا همان همانگونه که پیران مهربان و خردمند قول و زبان داده بود افراسیاب سیاوش را چون پسری نگه خواهد داشت در دو روایت بعدی سرنوشت سیاوش را پی خواهیم گرفت